یک جرعه از مملکت جم خوشتر بوی قدح از غذاوی مریم خوشتر آه سهریز سینه خماری از ناله بوسعید و هم خوشتر در دایره سپهر ناپیدا غور جا میست که جمله را چشاونید به دور نوبت چو به دور تو رسد آه مکن می نوش به خوشدلی که دور است به جور عمر تو چه دو و چه سی چه هزار، زین کهنه سرا برون برندت ناچار، گرپا چهی و گرگدای بازار، این هر دو به یک نرخ بابد آخر کار. او را خواهی ز زن و فرزند ببر مردانه در خیش و پیوند ببرد، هر چیز که هست بند راه هست تو را بند چگونه ره بند ببر.